به نام خدای یگانی مهربان سلام افسانه‌ها وقت و قصه قومی ریشه در تاریخ دارند و به زمان دور برمیگردند زمانی که انسان‌ها گذشته‌ی خودشون رو نه در تاریخ بلکه در اسطوره‌ها و روایت باستانی میافتند در واقع افسانه‌ها ها روایت های ساده و ایستا نیستند پویایی مداوم و حرکت در افسانه‌ها ها زنده و فعال به اونها میده گویی که افسانه نه حکایتی بازگو شده از هزاران سال قبل بلکه روایت زندگی روزمره ماست این هفته میخواییم افثانهی رو از مردمان سرزمین آسیای میانه براتون نقل کنیم به نام افسانه ماهیگیر واقعی برگرفت از کتاب افسانهای مردم دنیا با ترجمه ای از فتولاه دیدبان روزی روزگاری در زمانهای خیلی خیلی قدیم، ماهیگیری با همسر و تنها پسرش کنار دریاچه زندگی میکردند. مادر خیلی پسرش رو دوست داشت و هیچ وقت از اون جدا نمیشد. پدر دوست داشت پسرش مثل خودش ماهیگیر بشه و فوتوفن ماهیگیری رو یاد بگیره. اما زن میگفت نه نه نه. من از دریا میترسم. پسرم باید یه تاجر بزرگ بشه این کار خطری نداره اما اما دریا وای خدای من موجها و یه سمگین و روزها گذشت یه روزی مرد به زنش گفت زن پسر ما دیگه بزرگ شده بذار با من به دریا بیاد و خوک دریایی شکار کنه زن با و نگرانی جواب داد این چرفی که میزنی پسرم خیلی کوچیکه. آخه آخه با این قط و قبارش چجوری میتونه خوک دریایی شکار کنه؟ مرد با عصبانیت گفت او ده سالشه من فقط هشت سالم بود که کنار پدرم خوک دریایی شکار میکردم زن با ترش روی گفت ولی من دوست ندارم پسرم تنها امیدم ماهیگیر بشه مرد با عصبانیت وسایل ماهیگیریش رو برداشت و رو به زن گفت من امروز اونو با خودم به دریا میبرم زن التماس کرد و گفت نه نه امروز نه حداقل بزار یه روز دیگه که نمیبینی دریا امروز طوفانیه من میترسم میترسم و اون قدر ریخت و التماس کرد تا بالاخره مرد قبول کرد که اون روز پسرش رو به ماهیگیری نبره. روزها به همین ترتیب گذشت و هر روز همین حرفها و جروبث ها اتفاق میافتاد. پسر دیگه بزرگ شده بود اما از کنار مادر تکون نمیخورد با مادرش میرفت و هیزم می آورد یا اگه در یا بود از کنار آب خرچنگ جمع میکرد وقتی پدرش میپرسید میخوای با من به گیری بیای با بیحوصلهگی جواب میداد نه اصلا حوصله ندارم و پدر با ناراحتی میگفت کدوم آدم بیحوصلهای میتونه شکارچی بشه پدر هرچند از این موضوع ناراحت بود اما گاهی به پسرش شکار کردن رو یاد میداد و حالا دیگه پسر جوانی نیرومند و تیزبین شده بود و شکارچی خوبی هم به نظر می رسید روزی در یک صبح زیبای بهاری پدر به پسر گفت آه من امروز برای شکار خوک دریایی به دریا میرم بهتر بیای و از نزدیک با نحوه شکار کردن خوک دریایی هاشنا بشی پسر فکری کرد و بعد آماده شد تا همراه پدر به شکار خوک دریایی بره اونا با غایقه به دریا رفتن دریا آروم آروم بود اونا اطراف رو با دقت نگاه کردن اما حتی یه خوک دریایی هم دیده نمی شد پدر گفت بهتر آروم و بی سر و صدا تو غایه بمونیم تا سر و خوک های دریایی پیداشه. اونا ساعتی آروم و بی سر و صدا توی غایه هاشون موندن ولی نه خبر از خوک دریایی نشد پسر که حوصلهش در رفته بود با ناراحتی گفت خسته شدم چقدر باید سب کنیم پدر بهتر برگردیم خونه پدر گفت ثبت داشته باش پسرم ثبت داشته باش نمیشه که دست خاری برگردیم خونه و باز پدر و پسر بوننظر ساعتی از انتظار کشیدن پدر و پسر گذشت و یه دفعه سر کله سه خوک دریایی روی آب پیدا شد پسر با خوشحالی فریاد کشید پدر اونجا رو پدر گفت میبینم میبینم آروم باش نباید سر صدا کنی پسر خوک های دریایی به قایق اونها نزدیک شدند شدن پدر نیزش رو به طرف اونها انداخت و به پسر گفت زود باش سود باش نیزت رو پرد کن پسر با دقت به خوکهای دریایی نگاه کرد و گفت ولی پدر اینا اینا چه شکارین؟ چقدر کوچیک و وارفتن نگاه کن ببین انگار و یه دفعه با خوشحالی گفت اونجا رو پدر یه خوک دریایی بزرگ واقعی من،, من میخوام اونو شکار کنم نگاه پدر به سمت شکار چرخی. ولی احساس کرد پسرش اشتباه تشخیص داده بنابراین فریاد زن اون اون خوک دریایی نیست پسر دلفینه دندونه خیلی تیزی هم داره نرو نرو خطرناکه پسر گفت نه پدر اون یه خوک دریاییه حالا میبینی که شکار من خیلی بهتر و بزرگتر از شکار توه و بعد به طرف اون حرکت کرد در این موقع سه خوک دریایی به چند قدمی قایق مرد رسیده بودند. مرد با زحمت زیاد تونست یکی از اونا رو شکار کنه. خب بهتر از هیچ بود. مرد فکر کرد. خب بهتره برم و به پسرم کمک کنم. مرد به طرف سخره رفت. اما اثری از پسر ندید و قایق همونجا نبود. دریا خالی بود. مرد با خودش گفت. نکنه پسرم غرق شده اون وقت جواب مادرشو چی بدم اما نه نه نه برگشت خونه و مرد با این امید که پسرش به خونه برگشته به طرف خونه پاروزن اختی به خون ورگشت دید که پسرش اونجا هم نیست با ناراحتی و تأسف تمام ماجرا رو برای زنش تعریف کرد زن گریه و زاری را انداخت که پسرم کجاست؟ پسرم کجاست؟ پسرم کجاست؟ اون تنها بچه من بود چطور میتونستی اونو توی دریای به اون بزرگی تنها بزن؟ مرد گفت گریه نکن زن، گریه نکن من مطمئنم پسرمون خیلی زود برمیگرده زن کمی آروم گرفت چند روزی گذشت اما پسر به خونه برنگشت پدر به کنار دریا رفت روی تخت سنگی نشست و شروع کرد به گریه کردن نمیدونست جواب هم همسرش رو چی بده با خودش گفت خدایا یعنی چه اتفاقی برای پسرم افتاده آ من چه پدر بدی بودم پسرم درش نمیخواست خوک دریایی شکار کنه من اونو وادار به این کار کرد خدایا منو ببخش و بعد پدر دوباره شروع کرد به گریه و زاری کردن در این موقع صدایی به گوشش خورد ای مرد چرا گریه میکنی مرد سرش رو بلند کرد پیری مرد عجیبی رو دید که نزدیک سخراها از زیر آب بیرون اومده بود. بدنش از فلس ماهی پوشیده شده بود و ریش بلند و سبز رنگی داشت. مرد با ناراحتی گفت: پسرم، پسرم گم شده. اون شکارچی نیرومند و ماهری بود. ما اومده بودیم دریا تا خوک دریایی شکار کنیم ولی اون اون یه دفعه پیرمرد حرف مرد رو قطع کرد و گفت چی گفتی؟ شکارچی ماهر؟ و بعد با صدای بلند شروع کرد بخندیدن حالا نخند و کی بخند مرد عصبانی شد و با خودش فکر کرد این مرد چجوری جراعت میکنه؟ پسر عزیز منو مسخره کنه بعد خواست چیزی به پیرمرد مرد بگه ولی ترسید به فکرش رسید نکنه این پیرمرد عجیب و غریب فرمون روای دریاها باشه مرد به پیرمرد نگاه کرد پیرمرد هنوز داشت میخندید مرد از سر بغز و عصبانیت سرش رو برگردوند پیرمرد گفت تو یه عمرم اینقدر نخندیده بودم امروز تو با این حرفت منو حسابی و بعد پیرمرد زیر لب تکرار کرد شیکاچی ماهر شیکاچی ماهر و دوباره شروع کرد به خندیدن مرد دیگه داشت عصبانی و کلافه میشد ولی به روی خودش نیاورد و فقط پرسید خیلی دوست دارم علت خنده شما رو بدونم پیرمرد جوابی نداد و همچنان به خندیدن ادامه میداد مرد سکوت کرد و خشمش رو فرو خورد پیرمهر بالاخره از خندیدن باز موند و گفت به <تصفيقی> خاطر لطفی که کردی به منو خندوندی <تصفيقی> رو به تو برمیگردونم مرد با شنیدن این حرف با خوشحالی گفت <تصفيقی> پسرم رو به من برمیگردونی واقعا؟ کی کجا <تصفيقی> پیرمرد گفت فردا همینجا همینجا منتظر باش و بعد در حالی که دوباری میخندید به زیر دریا فرو رفت و مرد با خوشحالی به طرف خونش براه افتاد تا این خبر مسرت بخش رو به همسر نگرانش بده روز بعد شکارچی به همراه همسرش به کنار دریا رفتن ساعتی به انتظار استادن یه دفعه موج دریا گهواری رو از آب بیرون انداخت پسر بچه یه کوچیکی توی گهواره بود زن با مهربونی بچه رو بغل کرد و گفت آه خدای من چه بچه زیبا و معصومی چقدر قیافهش برام آشناست اینگار انگار اونو دیدم وای خدای من ببین چه جوری به منلطخند میزنه مرد با تعجب نگاهی به بچه انداخت و گفت فرمانروای دریاها به جای پسر بزرگ و نیرومندمون این بچه رو فرستاده زن یه دفعه گفت وای خدای من درسته این این این پسر کوچولوی خودمونه همون همون که 18 سال قبل به دنیا اومد شروع به بوسیدن دست و پای بچه کرد. در این موقع فرمان دریاها از آب بیرون اومد. روی صخره نشست. خندیده گفت <تصفيق> خب من به بعدی خودم وفا کردم و پسرتون رو به شما برگردوندم. مرد گفت ولی اون یه پسر بچه است. پسر من مرد بزرگی بود. یه شکارچی واقعی. فرمون روای دریا با شنیدن این حرف دوباره شروع کرد به خندیدن و گفت باز هم به اون میگی یه شکارچی واقعی مرد با غرور گفت بله اون شکارچی واقعی و ماهری بود فرمون روای دریا ها گفت به نظر تو اون یه شکارچی واقعی بود که به جای خوک دریایی میخواست دلفین شکار کنه مرد با تعجب پرسید دلفین چیکار کنه؟ فرمان روای دریاها جواب داد؟ بله بله. اون میخواست به جای که دریایی دلفین شکار کنه؟ حتی فرق این دو رو نمیدونست. من به اون گفتم نیزش رو پرتاب نکنه اما اون گوش نکرد. میخواست دلفین رو شکار کنه؟ منم اونو بردم زیرا. زن از فرمان روای دریاها پرسید خب ما باید با این بچه چیکار کنیم با پسرمون فرمان روایی دریه ها جواب داد خب معلومه باید اون دوباره بزرگ کنیم و این بار اون خوب تربیت کنید تا یه مرد واقعی بشه و یه شکارچی ماهر واقعی و بعد پیرمرد مرد خنده اونا رو تنها گذاشت و به زیر آب فرونه دو زن به امراه بچهشون به خونه برگشتن زن گهباره بچه رو تکون میداد و میگفت چقدر خوشحالم که دوباره پسرم برگشت پیش ما حالا دیگه حسابی مواظبش بشه هستم نمیذارم هیچ جا بره هیچ جا. مرد گفت خیر اون وقتی تونست راه بره من اونو با خودم میبرم شکار شکار خوک دریایی زن با اسبونیت گفت امکان نداره من بذارم پسرم یه بار دیگه به شکار خود که دریایی بره امکان نداره مرد گفت ولی من این کارو میکنم حالا میبینی دیدی؟ دیدی اون پیله مرد احمق چجوری به پسرمون میخندید؟ این دفعه باید بهش ثابت کنم پسرمون یه شکار چیه ماهر و واقعیه واقعی زن گفت من دیگه نمیتونم یه بار دیگه اونو بزرگ کنم اون وقتی بزرگ شد باید تاجر معروف و کارامتی بشه نه شکارچی خوک دریایی مرد گفت من اصلا دوست ندارم پسرم تاجر بشه اینو بارها و بارها به تو گفتم اون باید مثل پدرش یعنی من شکارچی ماهری بشه فهمیدی؟ زن صداشو بالا برد و گفت اون هیچ وقت شکارچی نمیشه این پنبرا از گوشت در پیار یعنی اگر هم بخواد من من مادرش این اجازه رو به اون نمیدم فهمیدی؟ و بحث زن و یکی به دو کردنشون هنوز که هنوز ادامه داره. خب ما هم اونا رو به حال خودشون می‌ذاریم. ولی شما فکر میکنید پسر افسانه ما در آینده یه تاجر معروف میشه یا یه شکارچی واقعی ها؟ خب بهترین موضوع رو به دست زمان بسپاریم و منتظر بزرگ شدن پسر افسانمون باشیم افسانه ماهیگیر واقعی رو از افسانه‌های های مردمان آسیه میانه براتون نقل کردم از کتاب افسانه‌های مردم دنیا با ترجمه از فتولاه دیدبان افسانه ها ریشه در طرز معیشت، تاریخ مشترک، اندیشه و جهانبینی و عوامل موثر متعدد دیگه در یک قوم دارن و در اونچه که چندان مطرح نیست وجود یک یا چند شخص سازنده و روایتگر افسانه هاست. در پس ظاهر بسیار ساده ای دنیایی ها دنیای از راز و رمز ها پنهونه. حیوانات، نمادین، اشیا و افراد هر کدوم سخنی در خور توجه و کلامی ماندگار دارن. افسانهها ها بخشی از واقعیات زندگی روزمره و بخشی از باورها، آرمانها و تاریخ مردمان هر سرزمین هن. از این رو حفظ و پاستاشت ها ضرورت فرهنگی. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار سید فری نوربخش. نور اجرام مهران دوستی سدابردار ستاره حمیدی ا کننده زهرا بدله تا افسانه دیگر پرو